حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز به دست بلک هوادارته چون بلدی بخندی و چشم دل ببازید با دل ببندی اش دل ببندید اشبا که دلم سبزه دیچید توی دنیا از اووج موج شادی چاپ فردا و پسوردا شبواعکتت قلب سبز است دیچید توی دنیا از وج موج شادی تا پردا پسوردا سلام به همگی اینجا رادیو پسوردای شماره ۸1 امروز سهشنبه 20 بهمن 1394 پنج و پنج دقیقه با پسفرده با شما این جونا خب خب امروز آخرین روزیه که داریم در مورد شعار و شعار صحبت میکنیم و از اونجایی که دو روز دیگه سالگرد پیروزی انقلاب شکوه مند در ایرانه امروز می‌خوایم دوری بزنیم تو اون دوران با شکوه اوایل انقلاب و نگاهی بندازیم به شعارهایی که مردم انقدر دادن و دادن و دادن که آخرش امام آمد و انقلاب به سمر نشست پس همین ابتدای برنامه لازمه که سلام همچین کوبنده عرض کنیم خدمت همه پدرها و مادرها و همینطور پدر بزرگها و مادر بزرگایی که الان در جمع خانواده نشستن دارن برنامه رو گوش میدن خوب هستین؟ خسته نباشید واقع الو اه. الو با شما هستم ا... پدر خانواده که سرش کرده تو موبایل که یعنی مثلا حواسش نیست داره چک چیک میکنه پدر نازنین نازنین شما... بله پدر بزرگ ناظرینم نخه کنار فرش توجهشون رو جلب کرده دارم با اون ور میرن دیگه باشه همه نخای کنار فرش رو شما دونه دونه دارین می که مطمئن بشین محکم اب نداره مزایم نمیشیم مادر جان شما خوبی؟ ما... نیستن مادر جان همین الان رفتن توی آشپزخونه سر و غذا بزنن چرا بابا سلام میخوایم بکنیم بکنیم خدمتشون الو هیچ که نیست نخیش به حال گفتیم به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی عرض ادبی کرده باشیم خدمت بزرگترا او قسمت نشود در حالی کلی شعار دادن سالها قبل خسته شدن خواستیم بهشون خسته نواچی دی گفته با عیب نداره اصلا ولش کن سامی شهرام موزیک برو فضا مون عوض برو دوشتم برنامه ای روز شنبت البته با تاخیر گوش میکردم دیدم داری از گشنگی صحبت میکنی خواستم بگم که به قوله بنده خدایی ملت ما شعار خارن یعنی شعار شده جزی از سبد قضایی ما ایرانیا. خب شما هم شعار بخور عزیزو ما که چل سال داریم میخوریم حسابی هم سیه شدیم ایشار که شما هم سیر میشین ما سیریم نوش جان یادم رفت بگم امروز یادم رفت بگم آقا امروز تهیه کننده برنامه جلال سعیدیه من هیچ مسئولیتی قبول نمی کنم در مورد این برنامه به من هیچ ربطی نداره گفته باشم اینو من اول برنامه باید میگفتم یادم رفت خب همونجوری که میدونین فرضا نه پاسوردا یوم الله بیست و دوم بهمن و طبق روال هر سال راهپیمایی های 22 بهمن قرار هر چه باش و خوشو‌تر برگزار بشه امسالم آقا البته جلو جلو با بصیرت خاص خودشون پیش بینی کردن که 22 بهمن امسال چطوری قراره برگزار بشه و چه حال و هوایی داشته باشه حقیقتا ملت ما در طول این 37 سال این روز رو به معنای یک اید واقعی گرامی داشته است امسال هم خواهید دید به توفیق الهی حضور مردم در خیابان ها حضور چشمگیر و دشمن شکنی خواهد بود به فضل الهی <تصفيق> الهو اکبه لا یعنی سی و ساله که یه دونه از پیشبیی های معظله ها، یعنی چه اون معظله و چه این اشتباه عذاب در نیمده. همیشه گفتن مردم به شکل چشمگیر و گسترده میان و مشت محکمی میزنن به دهان دژمن و دقیقا هم روز تلویزیون نشون داده که مردم با حضور گسترده خودشون اومدن و دارن مشت محکمی میزنن به دهان دژمن یعنی میخوام بگم دقت پیشگویی خیلی بالاست. ممکنه مثلا یک سالی هم بیاد که حالا اتفاقی افتاده باشه یا مردم مثلا سر چیزی خب دلخور باشن به هر دلیل توی 22 بهمن به جای حضور دشمن شکن حضور مثلا چه میدونم دشمن قورگند داشته باشن یعنی کمتر مثلا بیان شرکت کنن دشمن نشکنه فقط یه گوشهش قور بشه اون موقع هم قطعا رهبر قبلش میگه که امسال راهپیمایی 22 بهمن قرار با شدت و شور کمتری برگزار بشه یعنی اینو میخوام بگم اینجوری نیست که پیش بینی های رهبر علکی باشه همیشه مثلا یه سری حرفای کلیشه‌ای بیاد بزنه در مورد حضور مردم این چیزا اگه قرار باشه مردم کمن بیان رهبر قبلش میگه بهمون به باور کنین به مرگ تک تکمون اگه دروغ بگم برم زیر ترهیلی اگه دروغ بگم به جون سعید به مرگ محصاب به خدا به جون همه این بچه ها حالا برو oh, yes. oh, yes. oh, yes. چی داریم آقای تایبان؟ پسی چون یکی از زیباترین شعارهایی که هیچوقت از ذهن من پاک نمیشه شعاری بود که قبل از انتخابات 88 همه مردم با هم نگفتن اگر تقلب بشه ایران قیامت میشه و دقیقا بعد از انتخابات 88 که مردم به خیابونه اومدن بلده. همه مردم گفتن نگفتیم اگر تقلب بشه ایران قیامت میشه و حرف خودشون رو به کرسی نشوندن این واقعا بلده. زیباترین شعاری بود که هیچوقت از ذهن من نمیره. سینا هستم از تورنتو. فیلم ممنونم سینا جان. البته بعدش هم گفتیم موسوی دستگیر بشه، ایران قیامت میشه که خب البته ایشون الان سالها در حس هستند و این بار هیچ قیامتی نشود. به حال امیدواریم ایشون همراه با خانم راهنما در آقای کروبی با قیامت یا بی قیامت از این وضعیت هر چه زودتر بیان بیرون. مرسی از تماس. او oh, یس yes. آقا خانوم دختر خانوم آقا پسر آقا واقعا ملت از چه راه های پول در میارن ها؟ یه زمانی مهران مدیری آیتم تن ساخت یکی از این شبکه های بیرون از ایران باد یا همون هوای ایران رو میکرد تو بادکنک و میفروخ به ملت یادتونه؟ باد ایرانم هست که تازه رسیده این باد میدون آزادی هزار دلار این باد دربند هزار دلار. بله خب بالاخره برنامه تنز بود و ما هم کلی خندیدیم و تموم شد رفت. چند وقت پیش تو خبرها اومده بود که یه نفر تو انگلیس شرکت راه انداخته. کارش اینه که هوای تمیز های انگلیس رو توی شیشه بکنه و بفروشه. بیشتر مشتری هم چینی های پولداری هستن که توی پکن یا سایر شهرهای بزرگ و آلوده چین زندگی میکنن قیمت هر شیشه هم 80 پوند یعنی 400 هزار تومان. برات مهران مدیری میگفت چقدر هزار دلار. دیگه خلاصه که کلی هم کارو گرفته و سفارش داشته و چینیای پولدارم که خب نمیدونم با پولاشون کار کنن استقبال کردن دیگه فکر کن یه شیشه اندازه شیشه مربع رو ببرن تو کوهستان مثلا درشو وا کنن بعد ببندن بعد به عنوان هوای تازه کوهستان مثلا بری بفروشی 400 هزار تومن ما میگفتن فلانی از آب‌کره میگیره الان ظاهراً دوست انگلیسیمون ماشاءالله از هوا داره کره میگیره دیگه واقعا من نمیدونم چی بگم دیگه نوش جونش stay بله خوشحالیم که با یه استیک دیگه با شما هستیم و در ابتدای این استیک اجازه بدید مرور کوتاهی کنیم بر استیک شب گذشته وا مال از خاص من سبور و قلیه و آش آبدان براتون بگم. بولو جان خیلی منو تحت تاثیر قرار دادی ما تو کارشو قایزای داریم اسمش گوشت لوبیا بود. می‌خوری یا دیگه تا پراگ می‌دوی حقت خوشمزه. میگم این قزاقو جنوبی بود. به درد مونم نمیخور شما تو شیراز برای صابونه میری آشی سر کوچه تون آش سبزی با پیاز داغ ول. من واقعا دوست داشتم غذایشون. گوردیس می‌کنی یعنی؟ بله, بله بله وقتی من بوستون زندگی می‌کردم اویا پچباغاله گیر با انا اسم ایس Red Shelby. نیاز به ب... ترجمه داره دوستان بچه ها. والا من که چیز زیادی نفهمیدم. بله اما امشب هم گاز استیک از غذاهای خوشمزه شما پر بود اما چک کنیم که اینجا رقابت تنگاتنگ بر روی گاز برنامه برپاست و ما برای امشب با نظر پرودوسرهای برنامه فقط میتونیم با چهار شرکت کننده در خدمت شما باشیم اولین شرکت کننده ما از یست تلفن میکنم ما یه غذایی داریم که الان دیگه بینال ملی شده اسمش هم کل گیپاس ما کل رو با پاچی که درست میکنیم بعدش تو شکنبه شکنبه گوسه رم که تمیز پاک شده باشه اینجا جو و آلو و کشمش و یه مقداری هم سرجی اضافه میکنه بعد وقتی که کل پاچه پخته شد نیم پخت شد, شد. اونم میذاریم تو دیگه کله پچه کله که پخته میشه اونم با خودش پخته میشه یک چیز خوشمزه میشه که خود آدم میدونه ممنونم از اولین شرکت کننده جلال دوست داشتید در صورتی که با خوردن این غذا تا 48 ساعت دیگه چیزی نمی‌خورید من می‌تونم بهتون کار کنم ولیک غذا بنو میشه جنوبی نبود خب ولی مهرت به دلم نشست ممنون شرکت کننده بعدی سلام فرشه جان قربانت برم خواستم امشب یه غذای خمدانی بشه یاد بدم بهش سیب, سیب زمینی کوره ای. همون جویه زمینی دورش فویل میپیچیم میندازیم وسط زغال زغال داغ. بعد نیم ساعت دمری مخوریمش یک حالی میده خیلی قشنگه ماندانا از کشور روباه پیر ممنون از ماندانا شرکت کننده بعدی و اما ببینیم نظر محصا چیه ماندانا جان از کشور روباه پیر این من تا اونجایی که میدونم تو همدان حداقل ده مدل آش وجود داره خب از اونا برامون میگفتی سیب زمینی پخته که همه جای دنیا همین ریختیه که شهرام میگم همه دانیا یه آبگوشت فلفل دارن خون خون؟ یعنی باب دل ما جنوبیان آه. بعد شما سیب زمینی پخته به ما حواله میدی؟ بله مملم از نظر پروژیوسرها و شرکت کنندی بعدی؟ به سر اون نونه سنگک اون چربیه اون گوشت با زعفه رون رونون بمالی با گوشته بریم آخ از نونه زیر کباب خوشمزه تره اونو بعد باره ای اونا پیاز بخوری و دوغ محلی وای وای چه شوبت ولی زور بخورین دا شب سنجینه خسته مر اومدش <تصفيق> ممنونم ببینیم نظر پرودوسر هامون چیه فرشته جان ایشون توصیفش از نون برگیون من خیلی دوست داشتم ولی چون معده منو قضاوت کردن من نمیتونم باشون همکاری کنم سعید با احترام به نظر مهرسا من شخصا با کسی که اینقدر از غذا لذت میبره به خوبی میتونم ارتباط برقرار بکنم موفق باشید دوست من ممنون شرکت کننده بعدی امان یه تا مازندران دلی و غذا دارمی به اسم ترشقریه یا ترشقریه که درستون از سبزیجات، ترشیجات، رشته کذیب <تص> <karışpoons> <passiert> هم دارنه دلی با تشکر <g referencedCause> خیلی ممنونم جلال کاشین کوشن دوستان میگفتن که قلیاشون ماهی هم داره یا نه ولی من شخصا لهجهشون خیلی دوست داشتم. بسیار خوب سعید من هم لهجهشون رو خیلی دوست داشتم ولی فکر کنم همه تمرکزشون روی لحجه بود و خیلی به خود غذا توضیح ندادن البته. بله. دوست عزیز من خودم به شخص پرودوس میکنم کار شما رو. خیلی ممنونم این هم از شرکت کنندهای امشب اما در پایان این استیج می خوایم با هم یه مروری داشته باشیم روی صداهای استیکی هایی که به دلایل مختلف به گاز استیج نتونستن راه پیدا کنن. قضای مورد علاقه من سوسیس دخمه مرغه آقا بوشوی گیلان هر رستوران درون بوشوی گی پلا کباب کدک حتی پلا کباب اونم نه برگ و کوبیده مسخره بازی نه ما این اینجا مشاوراصسم آشپز داریم آش فزه ا هفته پیش همه به طرق ااسهال مطالع شده بودن یه جگرکی بود تو فلک چهارم ترامپاس با با برچ میرفتیم اونجا جگر می زدیم تو رگ عجب جگره میداد. یکی از بهترین غذاایی که تو ایران و تبریز، میتونیم بخوری عملت ایران بولیت زخصن یومورتای نام بی از ارمودی سینن اونا سراتر هستن تا چه زخصن و نهایتا نوش جونت دیوشن. ممنون از همه امیدواریم همه این عزیزان رو به زودی روی گاز استیک ببینیم و شما که تا به حال با استیک تماس نگرفتیدم بدونید که از شما تا استیک فقط یک گاز فاصل است تا استیک بعدی بریم سراغ برنامه امروز رادیو پس با و موضوع شعارشناسی انقلاب بگو مرگ بر شاه یا اندکی صبر امام نزدیک است. بیامی یک شما ی 981. بدانید و آگاه باشید که شعارهایی که در انقلاب ایران مطرح شد به ای بود که بعد از چند سال همه ی آنها می توانست علیه خود حکومت برآمد از انقلاب استفاده شود و فقط لازم بود که در این شعارها به جای شاه خمینی و به جای سلطنت جمهوری اسلامی را قرار دهیم تا آن وقت بفهمیم که چیزی که با شعار بنا شود به درد دم توپ قرار دادن هم نمی خورد اما چه سود که در هر حال همه ما در برابر توپ قرار گرفتندگان نیم امزاو در برابر این همه شعار سرگیجه مفرت گرفته های رادیو پس فرد دادا دادا, دادا, دادا. ند تقویم تاریخ تو عوض کن صد تا اومدن میای منو نمیذارم گوش میدم آرامش بگیرم برنامهت قشنگه اصلا آقا برو 20 تا برنامه بود نیو به ما چه اصن همین که هست آخره این دیگه تاریخو جان بچت یا پخش نکن یا اگه پخش می‌کنی یه حکی بهتر بذار اصلا من هیچ کیم هیچ جا فقط این کارو بکن مرسی آقا من نمیدونم مشکلت چیه با تقویم تاریخ برو آرسامی جان بذارش آره یادش به خیره صبح ساعت پنجانیم پا می پامی شدیم صبحونه می خوردیم می مدرسه بعد نبود که حال می داد خود لذت ببر این اینم از آزار و اذیت ما که یکی از شنونده‌مون خواستی خود آزار بدیم دیگه دیگه حالا حالا دیگه بعد وایسا کجا میری میخوام راههای ارتباطی رو بگم پس وردو ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست اگر خواستید با ما در ارتباط باشید ضمناً میتونید در فیسبوک گوگل پلاس ساوندکلاود اینستاگرام با ما امراه باشید کانال تلگرامی هم داریم میتونید در کانال تلگرامی به ما جوین بشید یا ملحق بشید ضمن با این شماره تلفن که شماره تلگرام ماست میتونید به این شماره برای ما اکس ویدیو و یا صدا بفرستید و حتی در بخش استیک اگه میخواید شرکت کنید ویدیو هم میتونید از غذاهای خودتون بگیرید یا اکس بگیرید و برای ما بفرستید لطفاً انقدر ما را عد نکنین به این گروه های هشل هفت ما نمیخوایم این گروه ها رو یعنی چی؟ جان چی میگی؟ میگم خواهش کنم خیلی خواهش میکنم که ما را اد نکنین به این گروه آقام ما چیکار داریم تو اون گروه آخه نکنین نکنین نکنین خواهش میکنم و تلفن های پیامگیر ما دو صف چهارصد دو و 163 سه اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن دو صف چهارصد بیست به نه و میتونید اپلیکیشنه رادیو پاسوردار رو iOS Hash میتونید دانلود کنید و صداتون رو به ما برسونید و رادیو پاسوردار رو از اون طریق بشنوید. تو یه داستان ماز گهی دور از منی فاصله اشتباه صدای تو لامشه ی معجزاست اینا تو خوبی که نمیتونم هیچکی یادت بیاره تو قلبم هرگز جز عشقت باس عشق دیگه جای این که نریو باشی همیشه کلن زمان شاه اینترنت و توییتر و فیسبوک و این برنامه ها نبود که برای همین مردم وقت آزاد زیاد داشتن اینجوری بود که تو بوه انقلاب شبا میشستن دوره هم کلی شعار میساختن صبح می تو خیابون اون شعارها رو فریاد می یا رو مثلا در دیوار می نوشتن یک دست از این شعارها اونایی بودن که خب علیه خود شاه بود که دیگه مرگ برشا ساده ترین و سرازترینش بود ولی گاهی هم خلاقیت به خرج می دادن و مثلا می توشو، وطن نشود، این وطن وطن نشود. خب البته بعدها شاه هم فوت کرد و وطن وطن نشد و معلوم شد این شعار زیاد شعار درستی نبوده. اون موقع ها مردم فقط دنبال بهونه بودن که خلاقیت به خرج بدن شعار بسازن. این بهونه ها حتی گاهی همین آب و هوا بود. همین آب و هوا یعنی مثلا وقتی هوا بارونی بود ملت چهار میدادن امروز هوا بارونیه کشتنشا قانونیه بله یا و... مثلا وقتی فقط ابری بود و بارون نمی اومد امروز هوا عبریه. بردن بله روزهای آفتابی رو البته ما نمیدونیم چی میگفتن اطبال همون برشای ساده میگفتن دیگه نمیدونم سوای این شعارهای آب و هوایی یه سری دیگه شعار علیه شخص شاه هم بود که مناسبتی و موضوعی بود مثلا شاه زمانی دستور داده بود که توی همه مدارس شیر و موز رایگان بین دانش آموزا. توضیح بشه بعد بچه مدرسه یا جای تشکر همین رو دست گرفته بودن و اینجوری شعار می دادن. من خواهش میکنم کنم از این پوریا که انشا بخونه بیاد برمون توضیح بده الان میاد من لطفا دوستان شعار بده هم با بنده تکرار بفرمه مو شیر و موز نمیخوایم مو شاه دوز نمیخوایم مو شیر و موز نمیخوایم مو شاه دوز نمیخوایم با اینجا قیله رو ببینم ببینی چی کار موچی بکنم واقعا حیوانکی ها نمیدونستن بعد که انقلاب بشه شیرموز میشه رویا. بچه مدرسه یه الان نمیرم دلشون به چی خوش ده فش که میشه نه به اندازه ای ما سرد انقلابی حفظ میکنن نه این ما کلاسشون رو تضین میکنن نه شعار میدن اندازه ای ما نقاشی هم نمی کشم روزای انقلابانهشون بدن امروز داشتم یه جعبه مبود بچه یه اون وارسی می کردم دنبال یه کتابیم گشتم. یه اوچشم گفتاد یکی از نقاشی کلاس دوم دبستانم فکر کنم برای مسابقه نقاشی ده فش مدرسه اون کشیده بودم. یه دیوار روش چپکی نوشته مرگ بر شاه یکم کنار دیوار واایستا انگار می مینویسه آیدین بچه دوست هم خونه ای ما بود طبق معمول گفت خاله اینو تو کشیدی گفتم آره میبینی یه سال از الان تو بزرگ بودم ببین چه خوب تصویر سازی کردم گفت الان این چیه گفتم شعار انقلابی گفت انقلاب چیه گفتم وا مگه تو مدرسه بهتون یاد نمیدن دهه فجر میدینی چیه گفت نه گفتم تو حیات سرود پخش میکنن مشق کم میگن فکر کنم این هفته مدرسه اینجوری بوده دیگه گفت ها فهمیدم یه آقایی اومده بود مدرسه آهنگ عروسی گذاشته بودن تو حیات اونم برامون حرف میزد گفتن جشنه مال این بود گفتم آره ولی فکر کنم ما آخرین نسلی باشیم که بدونیم شعار انقلاب یعنی چی؟ فریبورز غریب سلام سلام سلام به همگی فرشی جان فریبورز امروز تو بازی نفت با حریف قطری هم شنیدیم اتفاقاتی افتاد و فهاشی و شعار و این داستان آره؟ اوه اوه از اون طور زهرای به اضافه هیجده وقتی که قطر گل ابل و زد تماشاگرها خیلی فهاشی کردن که بازم برادرها مجبور شدن میشوفون و ببندن و بدون صدا برن فقط جواد خیابانی حرف میدهد و, و کوچ خب از شعارهای دیگه برامون بگو. بله، شعار دیگه امروز به یه نوع یواشکی و صدا اشاره میکنم کنند که مخصوص مسئول مثلا این شعار ساخت ورزشگاه نخص جهان اصفهان یادت باشه قبلا هم حرفش رو زده بودیم 20 سال کلنگش رو به زمین زدن هر رئیسی و هر وزیری هم قول بهره برداری داده مثلا زرس چند ماه آینده و اتفاقی ناییز صدای آقای زرگر آره نشده آقای زرگر استاندار اصفهانی حرفایی داره در این مورد که اگر معایری گوش به این حرفا در شأن اون نیست که یک پروژه مثل این ده ده سال طول بکشید از طرف دیگه دوستداران فوتبال هم شدیدن گل من بودن چرا که برای دیدن بازی ها باید میرفتن فلات و به کررات به من که نجوم میکردن نخواستن که ورزش تکمیل بشه بله خب این هم از این نوع شعار دیگه چه خبر در ورزش؟ امروز محمد مایلی کوهن از اینکه ازش ایراد گرفتن که چرا با بی بی, بی سی مصاحبه کرده واکنش با, با نشون داده فرشی اطمع دوباره به کیروشی کفاشیانی کسی گیر داده ها؟ این دفعه به آقای زریف گیر داده اوه. اونطوری که تا ناک آره ماهیلی کوهن گفته ظریف و جانکری هر شب به هم شب به خیل میگن ای بابا اون موقع, اون موقع صحبت های من با بی بی سی بده. بعد بعدم بنام داده که حالا بی بی سی دشمن شده لابات سی این این و سایر رسانه ها رفیق فابریک هستن و البته منظورشون از شب بخیر از نوع پس فرداریش خاله. نبوده باشه فقط دیگه اما منظورشون واقعا شب بخیر باشه آره حالا سر آخرم آقای که کوهن از آقاشونم فرشید مایه گذاشته و گفته خود آقا فرموده حتی کسی که به نظام اعتقاد نداره بیاد و رای بده حالا مصاحبه من با بی, بی با بی بی سی دقیقه شده عجب راست میگن دیگه بابا با بایشون مستمع آزادن چی کارشون داری دقیقه ای بابا بس. بگذاریم بس. ممنونم از زدفری برز و غریب باید خدافزی میکنیم تا هفته آینده شنبه. تا شنبه آینده خدا نگه دارم میکنیم با سلام بیسوی کسیه سشنبه شب راب زمنه وحشت از شنیدن خبر بازداشته ده عضو داعش در ایران با مروری بر عناوین خبری ساعت گذشته آغاز اوز <متصفح> نگرانی ترکیه از ورود 600 هزار پناهجوی سوریه دیگر به این کشور و نظر ناظران که خب با این وضعی که شما دارین رو از دم تیغ میگذرونین جمعیتتون کم میشه پس در نهایت مشکلی پیش نمیاد. نام که 600 استاد دانشگاه و حسن روحانی که با این وضع انتخابات برگزار نشه بهتره و گمان زنی ها در مورد اینکه الله فردا 100 استاد بسیجی هم نامه میدن که چرا این انتخابات رو زودتر برگزارش نمیکنی و توصیه وزیر اطلاعات که مردم باید به کسانی رأی دهند که به آنها تهمت زده شده است و پاسخ گروه های مردمی که خوب شد گفت یاجی ما داشتی میرفتیم به اونایی که بهشون تهمت زده نشده بود رای بدیم <تصفيق> مهمترین سر خطاق خبری ساعت گذشته را شامل میشدند اینک مشروع خبرها با همکارم بل بل <تصفيق> با سلام، بنابرای بزارش های رسیده شورایی حالی شهرسازی و مماری تصویب کرده است بلند مرتب سازی به هر شکل و صورتی که آن داده شود باید متوقف شود به بیان دیگر شهرداری تهران احرام تراکم فروشی را از دست داده است بر همین اساس یکی از کارشناسان امور جمع وری زباله کشور به ما گفت با توجه به کاهش های شهرداری در آینده نزدیک شهروندان عزیز باید در پرداخت ماهیانه نیروهای شهرداری که معمولا در ساعت نه شب به بعد پس از به صدا درآمدن آیفون خانه پرداخت می شود دقت بیشتری بکنند و افزود این خطر وجود دارد که نیروهای زباله زبال کن شهرداری از این به بعد با امکاناتی شبیه امکانات های آمریکایی به درب خانه ها مراجعه کرده ماهیانه خود را از حلقوم شهروندان بیرون بکشند پایان محشوه اخبار بله همانطور که شنیده ای ها برای گرفتن تایید صلاحیت چهره های معروف و شاخص اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات مجلس ادامه دارد و به همین دلیل همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به محل انجام این رایزنی در شورای نگهبان رفته تا برای ما از این رویداد گزارشی تهیه کنند همکار گرامی صدای بنده رو دارید شما الو همکار گرامی. الو. بله بله الو. همکار گرامی بله. بنده از محل انجام رایزنی ها در شورای نگهبان در خدمت شما هستم همکار گرامی بله خب به همکار گرامی از این رایزنی ها برای ما بگو چطور بوده تا به حال خیلی محفغیت‌آمیز نبوده و اینجوری که آقای دکتر عارف کن لحظه پیش از جلسه رایزنی اومدن بیرون و گزارش دادن خب. خیلی اتفاق خاصی تو این جلسه نیفتاده همکار گرامی عجب یعنی, پس یعنی اصلا کلا یعنی هیچ چیزی هیچی چی هیچی همکار گرامی ببینید ظاهرا خود رایزنی کننده ها هم نگران هستن که آه. مثلا خود آقای عارف اگه بخواد خیلی محکم وایس شورای نگهبان صلاحیت خودشم راست کنن همکار گرامی این که خب خیلی افراد رایزنی کننده با ملایمت برخورد بکنن همکار گرامی یعنی چی آخه خب حالت تا چه وقت دلانی نه رایزنی بکنن همکار گرامی ولی خیلی قوانین هشل هفته در این مورد همکار گرامی ولی ظاهرا اصلاح طلبها قرار تا آخر وقت امروز لیست نهایی شونو بدن بیرون همکار گرامی عجب همکار گرامی شما خبر دارید که در درون این جلسات رایزنی دقیق دقیقاً چی میگذره؟ ولی دقیقاً که نه ولی بر اساس شواهد ای اطلاح طلبه خواهیش تمنا میکنن هی اعضای شورای نگهوان میگن نه و عجب جانم؟ بله؟ بله ها؟ من؟ چی میگی؟ آره خب تایلند دوره کوتاهی دیدم واقعا نیاز ال... تایلند؟ باشه باشه الو, باشه ال... الو همکاره الو. گرامی با چی عرف میزنی بابا؟ الو چی میگی؟ جدی؟ ال... یعنی بولنجشونه کی. باشه باشه حالا وارو آنتنی علم. ما چی میگی تو همکار گرامی همکار گرامی با عرض پوزش از طرف دوستان اصلاح طلب خب. از قول شده برای گرفتن قلنج آیت الله یزدی به داخل جلسه برم اگه اجازه بدی الان الان الان قلنج الله یزدی دیگه چی وا به تو چه ربطی داره آخه همکار گرمی یعنی من نمیفهمم چیه داستان والا همکار گرمی این. اینا میگن شاید با گرفتن قلنج ایشون توسط بنده خب. بتونن از این مسئله در رایزنی ها به عنوان برگ برنده استفاده بله کنن من دیگه بعد برم ببخشید خدا نگهده خسته نگرد. نباشید برو برو با, با تشکر درخل از تبجه شما شنوندگان عزیز با قاتی کردم اصلا تا شبی دیگر و برنامه دیگر و غلنجی دیگر خدا نگهده یعنی استفاده از غلنج آیت الله یزدی برای گرفتن صلاحیت دیگه آخرش ها من اطلاعیه به اطلاع عموم مردم شهید پرور می که متاسفانه دولت نفوزی غست تا با افضایش 44 درصدی بودجه گردشگری در کشور پای نفوزی ها و جاسوسان غربی را به داخل میهن اسلامی باز نماگد به همین دلیل هیات زد نفوذی ها به کل کشور دارد با انجام یک سلسله عملیات انتخابی جلوی این نفوذ استکباری را بگیرد پای از تحرکاتی که قرار است در این عملیاتها ها صورت پذیرند شامل انجام مراسم اعدام در برابر فرودگاه امام خمینی و به محض خروج توریست ها خارجی از فرودگاه حمله به باند فروگاه امام و بالا رفتن از هر چیزی که قابل بالا رفتن باشد در این فروگاه نصب پوستر بزرگ آویات ازام احمد خاتمی و احمد الهدا در تمامی اتاهای تمامی هتل های بین المللی کشور دفن شهدای گمنام در طبقات مختلف هتل های بین المللی کل کشور و اعظام نیروهای ویجه کفن به مناطق توریستخیزی مثل تخت جمشید و قار علی صدر. در پایان از همه علاقمندان به فعالیت های زده توریستی کشور دعوت می شود با ما تماس گرفته راههای ابتکاری خود را برای بریدن پای توریست های به کشور با ما در میان بگذارند روابط عمومی حیعت ضد نفوزی های کل کشور هایون دختر خانماغ پسرها حتما دیگه همتون در مورد واکنش آقای حاشمی رفسنجانی به رد سلایت حسن خمینی شنیدین و میدونین که خونه ایشون چطور به جوش اومد و در ایک اقدام عجیب سلایت و شورای نگهبان رو که نور چشمی های رهبری هستن بردن ایشون زیر سوال که شما که نوی امام رد سلایت کردین و فرستادین قاطع باقالی ها اصلا سلایت خودتون از کجا بردین؟ این فرمایش ایشون یک موجه همچین طور عجیبی در بین اصولگره ها و اصلاح طلب و براندازها و خالصه همه به راه انداخت و هر کی به یک شکلی واکنش نشون داد این وسط واکنش اصولگره های رو از همه نگران کننده تر بود الان شما این اظهارات های حمید رسایی رو گوش کنین که چطور از حیثیت و شأن شورای نگهبان با نقل قول از امام البته دفاع میکنن؟ امام رحمت الله علی میفهمودن هیچ کس حق ندارد راجب به شورای نگهبان راجب به رأی شورای نگهبان یک کلمه بگوید اگر این را بگوید بگوید, بگوید شورای نگهبان کذاست این مفسد است یک همچون آدمی باید تحت تعقیب مفسد فعل قرار بگیرد آبا. آقای هاشمی رفسنجانی با صحبت‌های دیروزش التزام عملی به قانون اساسی و ولایت نداره و قطعاً باید در مورد این موضوع فسق فش... یا خود خدا وای وای هاشمی رو توی صحنه علنی مجلس بهش اتهام فعل ارز بزنن یعنی دیگه برجامی داریم در حد جنگ ستارگان اینجوری که پیش می هیچ بعید نیست نمیدونم آقای رفسنجانی هم خدا نکرده دیگه بره حسر خانگی دیگه ایداده بیداد ایداده آقا اونبه حقوق ما رو کی بده ما چی کار کنیم حالا یعنی اگه بره حسر آقا ما اکبر جان ای صدای مار میشنفی تو رو خدا یکم آرومتر امید این بچه ها که تازه اومدن اینجا شروع به کار کردن ناامید نکن این به هست ما چی کار کنیم مآلية، مآلية. تو رو خدا بگیر شما تو رو خدا رحم اوه. کن خلاصه خلاصه اوضاع حسابی قمر در اقربه یعنی <تص> آقای رفتنجانی هم اگه زبونم لال زبونم لال زبونم لال بره هست دیگه انقلاب نه تنها بچه ها و نوه های خودشو خورده که به باباننه خودش هم رحم نکرد انقلاب نیست که ماشالله گودزیلاست با, با چه بحاطی بوده ها د چه شوعرایی می دادن؟ دادی میگم شما توی انقلاب خیلی فعال بودی نه اصلا ما آتش فانه بودیم که آتش غهره الهی را در دهان خاندان پادشاه فرو کردیم ام. فعالیت که دیگه برای یک دقیق کل دادی با, دیگه با, دیگه. با دیگه. دادی چرا پس من هیچ وقت هیچ عکسی از شما ندیدم توی مجره های انقلاب دال بنده من اون موگه که هنوز عکس اخته را نشده موگه نقاشی میکرد بابا ددی این همه عکس از, از اون موگه خالی نبندید گمه نا که میبینی بابا. همش نقاشی که نمیخوای بفهمی تو که عکس بود اون موگه بابا بسره نادان اگه میگی یه خاطره تعریف خاطره؟ کن برادر خاطره, خاطره کانی نداره ببین یه یک بار یک مؤمنی آمده بود یک مشکل داشت خود به الله نمیتونهس برای ما مطرحش کنه این که مو مشکلش رو برای ما بکشه دادی بکن. بابا میگم این... از حضورتون تو صحنه های انقلاب خاطره بگو بله. این چیه دیگه داری میگی آخه عجب آن از اون لحاظ میکنم آنه که شما همینجوری کلی گفتی که خاطره هم... انقلاب که پسرم خب همش خاطره بود دیگه ولو یکیشو بگو دیگه عجب بله کنیم که انقلاب ما پسرم انفجار نور بود یکی دادی اینم که حرف ده. امام خمینیه با خاطره بگو ما رو بله بله. دادی ببین یه جمله مخواه بگین دلبندم میدانه یه گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی میدونه یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی میدانه یه دسته بره خط یه نفر برگرده یعنی چی دادی چی میگی بابا می دانی... آجانس شیشه ای دیدی جدیده ده. و تاریخ دادی آخه خب سری ندون اخشه دادی آجان سه شیشهایی هستی اینها همه ارفاي خودمونه اینها ختیار لگای فیلم آجان شیشه ای من اجانس شیشه دیگه منو سیونا نکن اما مال جنگ رفته به انقلاب نه دکتر داره؟ ای نه دیگه بله باشه دیگه دیگه مجبوریم خب تعریف باشه بم. بگو دالا ای تفرر رفتم ریانا شه اقفا خدا نه ببین دل بندم ما در راه ها و تفی مدیریت شعری رو برو مدیریت جهادی دا. شنیده بودیم مدیریت شعاری نشیده بودیم دادی چیه این این گفت... شعارهای انقلاب خب خب. خط تولیدی داشت دیگه ما این شعارها رو از سر خط تولید میگرفتیم میبردیم تحویل ته تح خط تولید میدادیم دادی چی میگی تو شعارم مگه خط تولید داره بابا خیلی؟ با دادی چی فکردی مربای بابا فکردی؟ شعار که انقلاب ما را پیروز کرد علکی بودند معلومه اه. که خط ته داشتن داشتند میشه این... توضیح بدی من نمیفهمم چیکار میکردی ببین... یعنی دقیقاً بالنسبه مومنین اینطوری بود که یک شعاری را سران نهضت نگه میکردند و تحویل ما میدادند ما خیلی شری تحویل راه پیمای کنندگان میدادیم برق کشته بل میگشتی نمیموندی تو راه یعنی... دیگه حضرت همون به ما گفته بود که همین هی بریم و بیایم. ترناک بود دیاب وقت سر بگم مرا انقلاب میخواد. دادی رسم پیچ موتوری انقلاب بودی شما. آنات را گاز بکن. مفکه انقلاب بودیم. خسته, خسته که حسیم. بیا بیا مرا بایه بابا با با با با بیای کم مرا بمال ان خستگی ما شاید تمام شدیم. با تو هم که دادی از هر فرصتی استفاده آه. میکنی برای اینکه که من بمالم تو. بمال بمال. تجارم عجب... های شهادت هم افتخارم های. بمال بمینم بخد... بمال حرف نباش. دادی اخه کی کل این ماساژ رو به میدی می تو ما اح... پول نمیدیم خجالت بکش وظیفت رو انجام بده برو بابا نمیخوام اح... اح... من رانتام قد شده پول میخوام دادی با اینجا اینجا بله باشه باینتا. دیگه دارم میمولم بابا بجام دیگه پسر اح... صاف بایستو بله بله اینجا... بعدی خیلی هم کمرت خیلی اینجا ها گرفتگی زیاد داره بایستو بایستو بابا داده بابا پیش خوب روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از رهبر انقلاب در دیدار با نخست وزیر یونان امروز تیتر زده بود که اروپا باید نقطه ضعف نداشتن اراده مستقل از آمریکا را اصلاح کند این پیغامو کاش میداد یک یکی دیگه می برد برای اروپا نخست وزیر یونان خدا کلی بده کاره الان بره به اروپا اینا رو بگه بشه میگه حرف وزاحت رو بدهی تو بده بابا گلابی روزنامه کسب و کار با اعلام حضور نخست وزیر یونان در تهران دیروز تیتر زده بود که الکسیس سیپراس در تهران هی hey. به امید روزی که الکسیس تگزاس رو هم بتونیم در تهران ملاقات کنیم. روزنامه اطلاعات به نقل از مدیر کل دفتر حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست روز یک شنبه تیتر زده بود که آمریکا فسیل‌های 8 میلیون ساله ایران را پس فرستاد. دستشون درد نکنه ما میتونیم به جاش چند تا فسیل زنده از بین مقامات نظام به رسم بود بهشون تقدیم کنیم اینطوری. شعورایی که علیه شاه داده میشد توسل به ائمه اطهار و امامان بود اینجوری مثلا امام زمان داشت به کن. ما ما از دست این چاله رها کرد بله خلاص بعد ها امام خمینی رو نمیدونم چی آورد و گفت اینم خدمت شما بعد دیگه فرمایش ندارین فرمایش دیگه ندارین دستشونم هم درد نکنه دیگه ملت الان روشون نمیشه دوباره رو بندازن به امام زمان که امام قبول نابغی رو بیا سر بله قبول کنین زشته دیگه. حالا زحمت کشیدین امام رو آوردن، بر حال زحمت کشیدن. خوبیت نداره پس بدیم بگیم همون اولی رو برگردونه که یه سری شعاره‌ها هستن که در اصل تعریف و تمجید و مخلصم چاکرم کردن ملت با امام بوده. ساده ترین شکل این شعار ها همون الله و اکبر خمینی رهبر بود که ملت میگفتن اما گاهی هم یه رنگ آبی به شعاره‌ها می‌دادن و می‌گفتن خمینی. گوش به فرمان تویم خمین خب همینم شد دیگه که وقتی خمینی دیدین همه سرواز گوش به فرمان داره گفت خب, خب چرا که نه و نظریه ولایت مطلقه فقیه رو وارد فاز اجرایی کرد و بعد گفت حالا جرأت داره کسی گوش به فرمان من نباشه میگن تعارف اومد نایمت داره همینه دیگه اینجوری شد دل نگرانی ما از آدمی آدمیست که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد کامران ملکموتی سلام سلام فرشید جان سلام خمه خوب به سلامتی کاندیداهای جشنواره فیلم فجرام که اعلام شدن درست لیست بالایی اما پنج تا فیلم که برها هر دریافت بهترین فیلم سی مرغ بهترین فیلم شناخته شدن آخرین بار کیسه هر رو دیدی به کارگردانی فرزاد معطمع که 5 تا البته نامزد شده دکتر رضا میرکریمی که نامزد در هفت رشته است ایستاده در غوبار محمد حسین مهدویان نامزد در هشت رشته امکان مینا کمال تبریزی نامزد تو نه رشته و عبد و یک روز سعید روستایی نامزد در ده رشته هستن که خب باید تا پنجشنبه منتظر بمونیم. ببینیم نتیجه چی میشه احتمال برنده شدن عبد و یک روز خیلی بالاست اگه منفق باشی بریم بخشی از فیلم رو با هم بشنه بشنویم یه جوری عرفی زنگان برای شارو اند. اندرس آخه مگه تو <تصفيق> ننت آیشفاریاز آیده که طبق بای شارو خانه میشن قبول خوشحالی از وقتی مردم حرف نزنی مرتزا مرتز آروم تا. که من قایمش کرده بوده اقلی جنن بهش نمیرسی باباش فهمیدین چه بایی نکرد؟ پس چرا الان بدون اجازه رفتی؟ بخش دیگه هیچ وقت تو زندگیت مثل ما قسم دروغ نخور باشه. آخه این قهرمانای جانفداای خانواده رو در میاره آدم حالش به هم میخوره. از اون سرش گرفت در اینجا چرا نباید نگهبان داشته باشه؟ خب بخش از صدای فیلم ابد و یک روز ساخته سعید روستایی رو شنیدیم. غیر از این نامزد بازی‌ها دیگه چه خبر کامران؟ سریال شهرزادی یافتن باز خبرآفرین شد صحشی جان تو قسمت 17 هم که دیروز به بازار اومد یه صحنه تو شهربانی داره که جالبش داره یا به با عنوان پاسپورت داره مصطفی زمانی شخصیت فرهاد بازجویی میکنه یه تابله توی اونجا نصب شده که یه سری عکس سران فراری مجرم حزب تو است بعد آریام میخواد که ازش اینو میگه شناسایی کن این رو می‌شناسی حالا یکی از این عکس‌ها که تو اون تابلوی مداری خودمون حسین شریعتی مداری او, او, او, او حالا چی شده می‌شه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> دیگه تهیه کننده سریال هادی رضوی حسن فتحی کارگردانم تو تریسند جدا جدا از بابت این اشتباه عشقی کردن گفتن امدی نبوده سهوی بوده عجب خیلی خب با یه خبر موسیقیایی بریم پرونده این نفترو ببندیم کامرا فردا اولین برنامه ای روز اول جشنواره موسیقی فجر کنسرت گروه بهارام به خوانندگی هنگامه اخبانه که ساعت 6 تو تالار وحدت برگزار میشه مثل همیشه آقا این اجازه برود ندارم ویژه خانم هستم ممنونم ازت کامران عزیز تا هفته آینده شنبه باد خدافظی می‌کنیم و بخشی از کار یکی از کارهای هنگامه اخبان به نام مرغ سحر رو میشنویم تا شنبه خودمو نگهدارم نان سر را شرر با این اما اگه از فاز شعارهای امامی بگذریم یه سری شعاران بودن که کلن ضد حکومتی بودن و بیشتر حوادث و اتفاقات اوائل انقلاب باعث می ساخته بشن مثلا یه وقتی بود که حکومت نظامی اعلام شده بود شبا مردم روی پشت ما شعار می دادن مثلا اما اوائل سال 88 که شبا علا اکبر میگفتن ملت اونجوری بعد اون موقع رئیس حکومت نظامی ارتش تشبوت ازهاری نامی بود که اومده تو رادیو تلویزیون گفت این شعارها نواره که پخش میشه و کسی روی پشت نمیاد مردمم روزای بعد که تو تظاهرات رفتن برای همین شعار ساختن اینجوری نوار که پا نداره ای ستاره. بله یا یه زمانی که اوضاع خیلی به ام ریخته بود شاه اومد و برای آروم کردن فضای باجی به مخالفینش بده و یک کسی مثل شاهور وقتی رو که کلی مخالف نظام و فتنگر محسوب میشد و ممور تشکیل کابینه کرد یعنی فکر کن مثلا الان معظم لعه یکی مثل نوسویو از حصف در بیاره بیرون بگه تو اصلا بشه رئیس جمهور بعد اینکه ملت کوتا بیان دیگه به حال ولی خب اون زمان مردم سرشون داغ بود و سری شعار اونم ساختن چه جوری این جوری ما میگیم شاه نمیخواد نخواست وزیر عوض میشه ما میگیم خر نمیخواد بالون خر عوض میشه یا مثلا اینجوری نشا میخواد نشاپو، لعنت به هر چی مزدور؟, مزدور، نمیخواستن دیگه زور مگه. البته زور که بود، ولی خب زور امام در نهایت چربید و شاه که غر کرد و رفت، به هر حال ملت بالاخره امامو آوردن که خودش دولت تعیین کنه و تو دهن دولت بزنه و اینا. بعدش هم امام دیدین تو دهنی زدن، ظاهرا فاز میده. هرکی کی رفت جلوی چیزی بگی و انتقادی کنه و اینا، یه تو دهنی از امام اومد خورد و اونجوری شد که آخرش این برش جون سلام شبابت بخیر خوبی شعر میخواستی عزیزم خواستم شعر از این بهتر ندارم که بگیم حالمون این غضضا خیلی خوبه. خیلی خوبه حالمون شلا که خوبتر بشه ممنونم از تماستون ۳ و ۷ سال پیش توی همچین روزایی تعداد زیادی از مردم ایران خوشحال بودند شروع و شغل همه جا رو گرفته بود و همه فکر میکردن که روزای تلخ و سیاه. تموم شدن و بوی گل و سوسن و یاسمن حال و روز اونا رو بهتر از اونی که بود میکنه. همه میدونیم توی این 37 سال چی گذشته بگیرو به بند سیاه دهی اول انقلاب جنگی که هنوز هم که هنوزه سایه نحسش از سر مردم این سرزمین برداشته نشد نشده و مهمتر از همه اونها میلیون ها دل امیدوار که دیگه شاید این روزها یادشون رفته باشه امید رو چطور میشه هجی کرد. این سی هم مثل همه سالهای دیگه تاریخ این سرزمین، حساب همه ما نوشته میشه به نام تک تک ما به نام همه نسل هایی که شاید کمرشون زیر بار سنگینی این همه تجربه های عجیب خم شده باشه زندگی ادامه داره حال همه ما خوب است حتی اگر تو باور نکنی با این که دارن از آدارا از زیر آوار جنون در میارن کفترهای خاکستر رو با این که بوی قفتیش و خون پیچیده توی قصه ها با این که صدای انفجار مرسی خونه همه جا همه جا همه جا هنوزم میشه قربانی این وحشت منو نشود حنم میشه تسلیم شب و از شیر کابوس نشود میشه باز سنگار از تنو نشکته به پرواز نشه پور حنم میشه عاشق شد و آ با این که داست دل خوره گردن این دقیقه ها رو میشموره با این که آینه از شب گریه با این که تو مهتاب و آب صدای کوچاست و شتاب، با این که تو پشتوی ذهن همه کز